محمد جواد بوستانی گوینده عظیم علی گلزاده. این داستان دخترک برفی، روزی روزگاری در یه روستایی نزدیک جنگل یه پیرمرد و پیرزنی داخل کلبه زندگی می کردن. روستا جمعیتی حدود چهل نفر و تقریبا هشت خانوار به اندازه یه شهر خیلی کوچیک. این روستا مردمانش با خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کردن. اما پیرمرد و همسرش میونه این جمع با محبت احساس شادی و رضایت نمی کردن. هر خانوادی یه چند تا بچه داشتند. بچههای کوچیکتر کنار جاده بازی میکردند و هر وقت ماشینی میومد پدر و مادرهاشون با فریاد از بچههاشون میخواستند تا از جاده دور بشند ولی پیرمرد و همسرش بچه نداشتند تا زن برای صدا کردنش پشت در بره یا مواظبشون باشه به این ترتیب بودش که اون دوتا هر وقت کاری نداشتند ساعتها پشت پنجره میایستادند و یباشکی بچه ها رو که بیرون بازی میکردند تماشا میکردند. اگرچه اونها یه گربه و چند تا سگ و تعدادی مرغ و خروس داشتند ولی هیچ وقت جای خالی بچه رو براشون پر میکرد. زن و شوهر پشت پنجره میستادن فقط بچه های مردم رو نگاه میکردند. وقتی سگا براشون پارس میکردند به اونها توجهی نمیکردند. اگه گربه خودشو برایشون لوس میکرد، بهش اعتناعی نمیکردند. برای مرق خروسا فقط آب و دانه می و بس اونا هیچ وقتی رو برای حیواناتشون نمی زاشتن. در عوض تمام وقت رو کنار پنجره برای تماشای بچه های مردم می زمستون که شد بچه ها لباس گرم پوشیدند و روی برف سرد و یخزده با هم بازی میکردند. به یک دیگه گلوله برفی پرت میکردند و فریاد میزدند و میخندیدند بعد با هم دیگه برف رو رو زمین قلتون و یا آدم برفی درست کردند اونا اسم آدم برفی خودشون و بابا یاگای برفی همون جادوگر ترسناک قصه ها گذاشتند پیر مرک که از پشت پنجره چه رو نگاه می کرد وقتی آدم برفی اونها رو دید به همسرش گفت زن بیا بریم حیات پشت خونه، یه دختر کوچولی برفی درست کنیم شاید جون گرفت و یه دختر بشه برامون پیر زنم گفت: حق با توه فقط خدا میدونه که چی پیش میخواد بیاد. پس بیا و بریم یه دختر کوچولو درست کنیم. بعدم شال و کلاه کردند و حیات پشتی رفتن. تو حیات پشتی هیچ کس اونها رو نمیدید. برف رو رو زمین غلطوندند و شروع کردن به ساختن بدن دختر برفی. برای ساختن دست و پای دختر برفی هم برف رو خیلی خیلی آروم رو زمین غلطوندند تا دست و پای ظریفی درست کنند. خدای مهربون هم به اون زن و شوهر پیر کمک کرد و دختر کوچولوی برفی اونها زیباتر از اون چیزی که فکر میکردند و حتی دوست داشتنی تر از شکوفه های بهاری هم شد. بلاخره نزدیک های غروب بود که کار درست کردن آدم برفی تموم شد. یه دختر کوچولوی تمام برفی با چشمایی سفید که نمیدید و دهنی کوچیک و لبایی که باز نمیشد. پیرمرد گفت آه با ما حرف بزن. و همسرش پرسید کبوتر سفید کوچولو نمیخوای مثل بقیه این طرف و اون طرف بودویی و او دویید باورتون میشه واقعا دویید ناگهان زن و مرد متوجه برق چشمای دختر برفی شدند که مثل آسمون و آفتابی میدرخشه لباش قرمز شد و خندید سفیدش هم پیدا شد تازه موهای مشکی بلندی داشت که باد اونها رو به این طرف و اون طرف می برد اون مثل شبای سفید و کوچیک شروع کرد به پایکوبی در میون برفها و همونطور که موهای بلندش به این طرف و اون طرف می رفت به آرومی با خودش می خندید دختره که زیبا مثل دونه برف تو باد به دور خودش میچرخید و پایکوبی خوبی میکرد چشماش میدرخشید و وقتی میچرخید موهای بلندش به پرواز در میومد. اون آواز میخوند و زن شوهر پیر بهش نگاه میکردند و خدا را شکر میکردند دخترک این طور میخوند خون گرم و سرخ تو بدنم نیست آب در رکهام هم است. میخندم و میخونم و میگردم در روز و شب سرد زمستونی این منم دخترک برفی روزی که بفهمم من عشقتان به من کم شده میشوم آب دوباره میروم به آسمان بالا من دخترک برفی مرد گفت خدای من، چه زیبایه؟ بعد رو به همسرش کرد و گفت بودو زن، فعلا برو یه ملافه بیار تا دورش بپیجم تا بعد براش لباس بدوزی. زن ملافه ی آورد و رو شونه های دخترک برفی انداخت. مرد که اونو بغل کرد دخترک، دستای کوچیک و سردش رو دور گردن پیرمرد انداخت و گفت شما نباید منو زیاد گرم کنین. اونها، دختر برفی رو به کلبه بردند. دخترک روی نیمکتی دور از اجاق دراز کشید و زن هم نشست تا براش پالتوی کوچیکی بدوزه. پیرمرد هم برای خرید کلاه پشمی و چکمه از همون دوروبرها برای دخترک برفی از خونه بیرون رفت. فروشنده ابتدا به مرد خندید، اما از اونجا که هیچکس از پول بدش نمیاد یه کلای پشمی و یه جفت چکمی کوچیک قرمز که دورش خز داشت بهش فروخت و حرفی نزد. بعد هم لباسها رو به دخترک پوشوندند دخترک برفی گفت خیلی گرمه. خیلی گرمه. باید برم بیرون تو هوای سرد. پیرزن گفت اما حالا وقت خواب و تو باید بخوابی. دخترک برفی، آواز همه روزهای سرد و شبای سرد رو خوند و گفت نه. من شب تو حیات بازی میکنم صبح هم که شد با بچه ها بیرون بازی می هرچه زن و مرد اصرار کردند و دلیل آوردند. پایده نداشت. دخترک فقط می من دختر برفی هستم. بالاخره هم به طرف حیات دوید و به وسط برفا رفت شما نمیدونین که چطور دخترک برفی زیر نور ماه رو برفای سفید و یخزده پایکوبی میکرد و به این طرف و اون طرف میدوید زن و شوهر از پشت پنجره همین طور اونو نگاه میکردند و نگاه میکردند تا بالاخره خوابشون گرفت و رفتن خوابیدند. پیرمرد تا صبح چند بار بیدار شد و به دخترک سر زد تا از بودنش مطمئن بشه. دخترک همونجا تو حیات میدوید دوید سایه خودش رو زیر نور ماه دنبال می کرد و به ستاره ها گلوله های برفی پرتاب می کرد. صبح انگام دختر برفی خنده کنان وارد کلبه شد تا با پدر و مادرش صبحونه بخوره. او به اونها نشون داد که چطور براش حلیم درست کنند. خیلی ساده بود. فقط با یه تکه یخ که داخل کاسه چوبی خورد میکردند. میشد. حلیم ای که دختر برفی میخواست. بعد صبحونه دخترک به خیابون دوید تا با بچه های دیگه بازی کنه. زن و شوهر هم نگاش میکردن و چقدر احساس غرور داشتند. چقدر از تماشای دختر کوچولویی که مال خودشون بود و در خیابون بازی میکرد لذت میبردن چقدر به خودشون افتخار میکردند. پیرمرد و همسرش پشت پنجره منتظر بودند تا سورتمی بیادا و به خیابون بودن از دختر کوچولوی برفی بخوان که مراقب خودش باشه دختره که برفی همراه بقیه بچه ها تو برف بازی میکرد. اون هم چه بازی؟ اون از همه بچه ها تونتر میدوید. وقتی میدوید چکمه کوچیک و قرمزش مثل چراغ برق میزد. تو پرتاب گلوله هیچ کدوم از بچه ها حریفش نمیشادن. وقتی بچه ها آدم برفی درست میکردند، مثلاً بابا یاگا رو درست میکردن دخترک اونقدر میخندید که آدم فکر میکرد الان که قش کنه دخترک میخندید و صدای خندهاش مثل زنگ ناقوسی شیشه ای بود وقتی ساختن آدم برفی تموم میشد بچه ها اونقدر بهش گلوله برفی پرت میکردن تا خراب میشد و دختر برفی بازم میخندید و میخندید اون از همه سریعتر بود و همیشه از همه بیشتر گلوله پرتاب میکرد. زن و شوهر هم میستادند و اونو تماشا میکردند و از داشتن چنین دختری به خودشون میبالیدند. زن میگفت اون فقط متعلق به منه. مرد میگفت کبوتر سفید کوچولوی منه. شب که شد دختره که برفی دوباره یک کاسه یخ خرد شده خورد و به حیات رفت تا دوباره با خودش بازی کنه. پیرمرد گفت عزیزم خسته میشی؟ و زن گفت امشب رو داخل کلبه بخواب عزیزم خوب تمام روز بازی کردی و خسته شدی. اما دختره که برفی فقط خندید و همونطور که آواز روزهای سرد و شبای سرد رو میخوند به طرف در دوید. قبل از خارج شدن به طرف اونها برگشت و با چشمایی که از شادی برق میزد به اونا خندید. تمام زمستون به همین ترکیب گذشت. دختر کوچولوی برفی تمام وقت می خندید و می و پایکوبی خوبی می کرد. شب هم که می شد به حیات می رفت و تا صبح به تنهایی بازی می کرد. صبح که میشد به کلبه می اومد و صبحونهش رو که باز هم یک کاسه یخ خرد شده بود میخورد و بیرون می رفت و با بچه ها بازی میکرد دوباره یک کاسه یخ خرد شده میخورد و بیرون میرفت و تمام شب رو بیرون میموند اون دختر خیلی دختر خوبی بود و هرچه پیرمرد و پیرزن می گفتند انجام میداد فقط هیچ وقت داخل خونه نمیخوابید. بچه های اون اونو خیلی دوست داشتن و بدون اون اصلا نمیتونستن بازی کنن. به همین ترتیب گذشت و گذشت تا اینکه تقریبا همین موقع های سال شد. شاید هم کمی زودتر به هر حال برف ها داشتند آب می شدن. و دیگه رفت و آمد آسون شده بود. بچه ها بیشتر اوقات که هوا آفتابی بود برای پیاده روی به جنگل می رفتند. دختر برفی هم با اونها می رفت. البته بدون دختر برفی به اونها خوش نمی گذشت. تا اینکه یه روز بچه ها خیلی از خونه های روستا دور شدند. وقتی می برگردند، برگردن دختر کوچولوی برفی مخالفت کرد و با خنده میون درختا دوید. بقیه بچه ها چون هوا داشت تاریک میشد، ترسیدند که دنبالش برند. اونها خیلی منتظر دختر برفی موندند ولی چون ترسیده بودند، همونطور که دستای همدیگه رو گرفته بودند، دوون دوون به طرف خونه‌هاشون برگشتند. دختر کوچولوی برفی ما میون جنگل تنها شد او به عقب برگشت کمی دنبال بچه ها گشت ولی نتونست اونها رو پیدا کنه از یه درختی بالا رفت تا شاید اونها رو ببینه ولی دور تا دورش رو درخت های بزرگ گرفته بود و اون نمیتونست خیلی دورتر رو ببینه دخترک از بالای درخت دوستاشو صدا زد و گفت آهای آهای بچه ها به من دختر برفی رحم کنید خرسی پیر و قهبهی صدای اونو شنید پای درخت اومد و پرسید دختره که برفی چرا گریه می کنی؟ دختره که برفی جواب داد آه خرس بزرگ چرا گریه نکنم؟ من راهمو گم کردم نزدیک غروب و همه دوستام رفتند خرس پیر قهوه‌ای گفت: میخوای تو رو به خونه ببرم؟ دخترک برفی جواب داد: آه خرس بزرگ، من از تو می‌ترسم. فکر می‌کنم تو می‌خوای منو بخوری. بهتره با یه نفر دیگه‌ای به خونه برگردم. بنابراین خرس از اونجا دور شد و دخترک برفی رو تنها گذاشت. گرگی پیر و خاکستری صداشو شنید. با چالاکی خودش رو بهش رسوند و زیر درخت ایستاد و پرسید. دخترک برفی چرا گریه می دخترک برفی جواب داد. آه گرگ خاکستری چرا گریه نکنم؟ من راه گم کردم و هوا تاریک شده همه دوستام رفتن. گرگ پیر خاکستری گفت میخوای تو رو به خونه برسونم؟ دخترک برفی جواب داد آه گرگ خاکستری من از تو میترسم فکر میکنم تو میخوای منو بخوری بهتره با یه نفر دیگه به خونه برگردم بنابراین گرگ هم تند و تیز از اونجا دور شد و دخترک برفی رو تنها گذاشت. روباه قرمز پیری صداشو شنید. با پاهای کوچیک و نرمش دوون دوون به درخت نزدیک شد و با خوش ازش پرسید. دخترک برفی چرا گریه می دخترک برفی جواب داد. آه روباه قرمز چرا گریه نکنم؟ من راهمو گم کردم. هوا هم تاریک شد و همه دوستان رفتن روباه قرمز پیر گفت میخوای تو رو خونه ببرم؟ دختره که برفی جواب داد آه روباه قرمز من از تو نمی ترسم. فکر نکنم تو منو بخوری اگه منو ببری همرات میام بعد به هر زحمتی بود از درخت پایین اومد و موهای پشت روبارو رو گرفت و تو تاریکی شب دوون دوون به سمت خونه رفتند. تولی نکشید که چراغهای روستا پیدا شد و چند دقیقه بعد هم به پشت در خونه پیرمرد و پیرزن رسیدند. پیرمرد و پیرزن داخل کلبه نشسته بودند و گریه و زاری میکردند یکی میگفت چه بلایی سر دخترک اومده؟ دیگری میگفت یعنی الان کبوتر سفید و کوچیک من کجاست که ناگهان دخترک گفت من اینجا روباه قرمز مهربون منو به خونه آورد پس سگ‌ها رو ساکت کنید پیرمرد ها رو ساکت کرد و به روباه گفت خیلی از شما سپاسگزارم روباه قرمز پیر گفت واقعا میگین راستش من خیلی گرسنه هستم پیر زن نونی آورد و گفت بفرمایید این نون خوشمزه برای شما روباه گفت اوه ولی من یک مرغ گوشتالوی خوشمزه میخوام چه باشه دختر کوچولوی برفی شما به اندازه یه موقع چاق که ارزش داره برا شما. پیرزن گفت بله حتما بعد زیر لب به شوهرش گفت مرد ما که دوباره دخترمون رو به دست آوردیم مگه نه؟ مرد گفت بله باید خدا رو شکر کنیم. زن گفت حیف نیست بی یکی از مرغای چاقمون رو از دست بدیم؟ مرد گفت درسته اما چیکار کار کنیم؟ زن گفت من یه فکری دارم و بعد نقشش رو برای مرد تعریف کرد مرد هم بیرون رفت و با دو تا کیسه تو دست خودش برگشت زن و شوهر بهترین مرغشون رو داخل یه کیسه گذاشتند و درش رو بستند و داخل کیسه دیگه یه سگ گذاشتند بعد هم کیسه ها رو بیرون کلبه گذاشتند و روباه رو صدا زدند روباه پیر قرمز که خیلی گرس بود همانطور که داشت دور لباش رو لیس می کنار اونها اومد زن و شوهر. در یکی از کیسه ها رو باز کردند و مرغ بال بال زد و بیرون پرید. روباه پیر قرمز به دنبالش دوید تا اونو بگیره یهو پیرمرد و پیر پیرزن در کیسه دیگه ای رو باز کردند و سگ وحشی بیرون پرید. روباه بیچاره به محض اینکه برق چشمای سگ رو تو تاریکی دید از خیر مرغ گذشت. و به سرعت پا به فرار گذاشت و سمت جنگل دوید. پیرمرد و پیرزن با خوشحالی گفتند: حالا خوب شد هم دختر برفیمون رو پیدا کردیم و هم مرغ چاقمون رو از دست ندادیم. اما اما یهوی صدای دختر کوچولوی برفی رو شنیدند که داخل کلبه آواز میخون. دخترک این آواز رو میخوند. آدمها آدمها حالا فهمیدم که از یک مرغ هم کمتر دوستم دارید. پس دوباره باید برم، خدا حافظ خدا حافظ، دوباره به آسمون بر برمیگردم به سوی مادر مهربونم، دختر کوچولوی برفی، دختر کوچولوی برفی زن و شوهر به سرعت داخل کلبه شدند جلوی اجاق چاله کوچک آبی بود که روی اون کلاه پشمی و پالتوی کوچک و چکمه قرمز دخترک برفی افتاده بود زن و شوهر حاله از دختره که برفی رو با چشمای درخشون و موهای بلندش می که توی اتاق پایکوبی کوبی می کرد. التماسش کردند. نرو خواهش می کنم نرو. حالا دیگه به زحمت می تونستن دختر رو ببینند که پایکوبی میکنه. اما صدای خنده اونو میشنیدند و همینطور صدای آوازش رو که میخوند آدم آدمها آدم ها حالا فهمیدم که از یک مرغ هم کمتر دوستم دارید دوباره باید آب بشم و به سوی مادرم برم دختر کوچولوی برفی دختر کوچولوی برفی بعد در باز شد و سوز و سرمای شدیدی اتاق رو پر کرد و دخترک برفی رو با خودش برد دختر کوچولوی برفی به آغوش پدرش سرما و مادرش برف پرید اونها اونو در آغوش گرفتند و از بالای ستاره ها به شمال دور بردند دختر کوچولوی برفی تابستونها روی دریاهای یخصده بازی میکنه و زمستون دوباره به روسیه برمیگرده کسی چه میدونه شاید روزی بعد از ساختن آدم برفی دیدید که به جای اون دختر کوچولوی برفی ایستاده.